مطابعت نسارا وزیر را دل بدو دادند ترسایان تمام خود چه باشد قوت تقلید عام در درون سینه مهرش کاشتند نایب ایساش میپنداشتند او به سر در جاول یک چشم لعین ای خدا فریاد رس نعم المعین صد هزاران دام و دانستی خدا ما چون مرغان حریس بینوا دم بدم ما بسته دام نویم هر یکی گر باز مرغی شویم میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دامی میرویم می بی نیاز ما در این انبار گندم میکنیم گندم جمع آمده گم می کنیم می آخر ما به حوش که این خلل در گندم است از مکر موش موش تا انبار ما حفره زده است و فنش انبار ما ویران شده است اولی جان دفع شر موش کن وانگهان در جمع گندم جوش کن بشنو از اخبار آن صدر و صدور لا سلامت تم لا بالحضور گر نم موشی دزد در انبار ماست گندم اعمال 40 ساله کجاست ریزه ریزه صدق هر روزه چرا جمع می ناید در این انبار ما بس ستاره آتش از آهن جهید واندل دل سوزیده پزرفت و کشید لیک در ظلمت یکی دزدی نهان می نهد انگشت بر استارگان می کشد استارگان را یک به یک اول که نفروزت چراقی از فلک گر هزاران دام باشد در قدم چون تو با مایی نباشد هیچ قم هر شبی از دام تن ارواح را میرهانی میکنی الواح را میرهند می می در هر شب زین قفس فارغان نه که که محکوم کس شب ز زندان بی خبر زندانیان شب ز دولت بی خبر سلطانیان نقم و اندیشه سود و زیان نخیال این فلان و آن فلان حال عارف این بود بی خواب هم گفت عزت هم رقودن زین منم خفته از احوال دنیا روز و شب چون قلم در پنجه تقلیب رب، آنکه که او پنجه نبیند در رقم فل پندارد به جنبش از قلم، شمیز این حال آرفان مود، خلق را هم خواب حسی در ربود، رفته در صحرای بیچون، جانشان روحشان آسوده و ابداونشان و سفیری باز دامن در کشی جمله را در دام و در داور کشی فالغ الاسباه وار جمله را در صورت آرد زندیار روحای منبسط را تن کند هر تنی را باز آبستن کند، به جانها را کند آریز زین، سر ان نوم و اخل الموت است این لیک بهر آن که روزایند باز برنهد بر پاگشان بند دراز تا که روزش وا کشد زان مغزار و از ها هاردش در زیر بار تاش چون اصحاب کهف این روح را حفظ کردی یا چو کشتی نوح را تا از این طوفان بیداری گهوش وارهیدی این زمیر چشم و گوش ای بسی اصحاب کهفن در جهان پهلوی تو پیش تو هست زمان قار با او یار با او در سرود مهر بر چشم است و بر گوش چه سو